گل های آیا شما که رادیو صدای را بر ببرید؟ برنامه فکری تعلیمی و تربیتی بچیدخترا با با که سطری می کنهد خلاف سلام است می تانی بر م بگوی که کدام کدام دعاهایی ها ر یاد داری دعای ننخوردن دعای ازخوخیستن دعای خاو کردن اینها اطفال شعران خلافتند اینها آیندۀ درخشان خلافتند پیام برزو است که بیاین به خلافت اسلامی و از گناهان تو کنند بله بله اینها گل های خراسانند که در کوههای خشک جنگلهای جنگل های بی پایان و آواز های حیبتناک صلاح های سقیله به فکر و روحیه اسلامی تعلیم و تربیه را به دست می آورند. با یک دستشان قلم و به دست دیگرشان شمشیر است. در بمبوری میشه یا جنگ میشه یا صدای تفنگ و صدای بمی چیزا را مشنوی نمی همین نسل جهاد در تمام دنیا قرآن را حاکم می میکنند الله، دلگفته های اطفال خراسان دو شنب شبها از رادیو صدای خلافت <تصفيق> طاغوت شيناسي طاغوت شيناسي مَن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام والله سميع عليم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 داوم میکنه که بالاوتالا ما ایمان داریم، توحید ایمان داریم، لکن خلبان تاغوت دوست داشته باشد یا زبانان، میان تاقدت تاریخ میکرده باشد یا امامان، از تاقدت اطاعت میکرده باشد یا ضمنی کلمه از ضمنی ناقصی ایمان است. این برنامه را دوشنبه شب ها و چهارشنبه شب ها از رادیو صدای خلافت فراموش نکنید. <تصفيق> لان في كوزمرتها فلا بقاء لكم في الكفر والكذبي السلام و ورحمه الله های رادیو صدای خلافت ما با مسلم خراسانی هستم در خدمت شما در برنامه شناسی شما رو خوش آمدید میگم در این برنامه شیخ تاها حافظ الله را با خود داریم خب امشب مشنویم که چی کسان طاغوت شده میتواند و ما چیگونه از تواغید خود را نجات بدهیم خب سوال اول از این قرار است که آیا انسان ها هم تاغوت شدن توانند و اگر میتوانند چی کسانه هستند شیخ صاحب در این باره ما معلومات بتین بسم الله الرحمن الرحیم برادر محترم پیش ازی که ما برای شما از این بگیم جواب سوال شما را بتو و باز برای نحوست تاغوت و برای اینکه تاغوط یک چیز مضموم است از نگاه قرآن کریم و احادیث نبی علیه السلام اگه با بعضی برای شما بگیم که الله متعال میفرماید و ما یک فر طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقه یعنی در این آیه الله متعال از ما مسلمان ها خواسته که به طاغوت کف بکنیم و به الله متعال فقط ایمان داشته باشیم لذا از نگاه قرآن کریم طاغوت یک چیز مذموم و منحوس شد و مسلمان ها باید از این دوری و اجتناب بکند و در ملابطه به سوال شما برادر محترم بله انسان ها میتونه تاغوت قرار بگیرد اولا اصلا خو این است که تاغوت بزرگ و تاغوت کلان شیطان است که اصلی تاغوت و ام تواغید یا پدر تواغید شیطان است و بعد از او بخش اعظم تواغید را انسان ها تشکیل میده ها. مثلا کسی که حاکم باشه یا عالم باشه به غیر الله حکم و فیصله بکنه او را تاغوت گفته میتونیم مثل که کعب بن اشرف یهودی بغیر ما انزل الله به خاطر رشوه یا پول فیصله کردن باز الله متعال همو انسان را طاغوت خطاب کردن چطور چنانچه الله متعال میفرماید یوریدون ایا تحاکم الی الطاغوت و قد امروا ان به بعد از اینکه فیصله را کعب بن اشرف کردن فیصله بین یک منافق و یهودی را کردن و باز منافق ظاهرا میگفتن که ما مسلمان هستم. الله متعال خواستن که همین منافق را، منافق ازورا برای پیامبر علی السلام و برای مسلمان ها آشکار کنه و میگوید که همین تو ادم ها اراده دارن که به تاغوت فیصله خود را ببرن. اونجا فیصله خود را یادم برده بود به کعبه بن برده بود. لذا که از قرآن کریم ثابت شد که انسان میتونه تاغوت شده. و همچنین حاکم یا عالم که تغییر دهنده شریعت الله متعال باشد و هر دلیل که باشه و با هر دلیل اگر کسی حاکمی یا عالم شریعت الله متعال و تغییر بده باز او میشه تاقود میشه و مخصوصا کسانی که خود را مشرع میدانه فعلا در این نظام های تاقودی و خود را مقنن و قانون گزار می میدانه او آدم اساس تاقود را تشکیل میده و همچنان کسی که دعای علم غیب بکند او آدم بدون ازن الله و بدون این که الله متعال به او خبر داده باشه باز او آدم گفته میشه. طاغوت میشه و همچنان کسانی که به غیر از الله انسان هایی که عبادت بشود و به غیر از الله است یعنی انسان ها همه ما از الله است انسانی عبادت بشود و باز برای او عبادت راضی باشه و همچنین عبادت هم برای خود انواع و اقسام داره وقتی که ما میگیم عبادت به غیر از الله عبادت بشه و او طاغوت گفته میشه عبادت با انواع و اقسام خود تنها که این نیست عبادت که کسی یک انسان دیگر را سجده کنه بازی را بگمیم عبادت یعنی ندای لغیر الله را هم ما عبادت می و بعد نظر لغیر الله را هم ما عبادت می در عرفه اسلام و شریعت ای عبادت و همچنین دعا لغیر الله هم عبادت و همچنین استعانت من غیر الله کمک خواستن از غیر الله این هم عبادت است یعنی انسان باید در مقابل خالق و خود زلیل باشه و فقط از خالق خود کمک بخواه اینها ها عبادت میشه و بعد اگر همون انسانی که معبود قرار میگیره در فرصت بازو راضی باشه و میشه تاغوت گفت جزاکالله خیلی شیخست شما اشاره به کعب ابن نبی اشرف کردین که امو یک منافق و یک یهودی فیصله رو برده بود پیش تاغوت یک تعداد کسای اصلا امروز که فیصلی خودا در نظام ها و بعداً میگن که ما مجبور بودیم چرا که خلافت نیست و یا کدوم نظام اسلامی نیست که ما فیسالی خود رو جا ببریم از این خاطر ما میخواییم که فیسالی خود رو برمی تواقید ببریم شما در رابطه با اعمال از اینا چی گفتنی دارین؟ این انسان ها کار خطرناکی را انجام میده و الله اتعال مسلمان دا حفظ کنه که فیسالی خود را و منتخاصم خود را به طاقوت به کافر یا به قانون از طریق کفر نشر شده یا توضیح شده شده به قانون ببره. دزا برای مسلمان ها میگن که مسلمان ها بیدار باشه و متوجه باشه که شما چه کار بزرگی را نمی الله مطال میگه از شما خواسته است که وقد امر و یک به. الله مطال بر مسلمان ها امر کرده که به طاغوت کف ببره به طاغوت فیصله را نبره. فیصله را به قرآن و سنت و به شریعت الله مطال بسواره. و که کسایی که فیصله خورمی بر برزونا الله لمس خطر کفر است برای عظیم انسان ها یعنی ممکن این کار مسلمان را به درجه کفر بکشانند اگر یک مسلمان میره به قضای تاغوتی به محكمه طاغوتی میشینه و بعد او فیصله را هم قبول میله او مطلق کافر شده چرا الله مطال برای ما گفته که شما به طاغوت کفر ببرزید اجتناب بکنید از کافر وقتی که تصدیق کافر را کردید مستقیما مخالفت را الله مطال شده در الله خیر خب شنوانده های گرامی شما فهمیدین که فیصلی خود را به طاقود بردن ای هم انسان امکان داره که از دایره اسلام خارج بسازه چرا که الله تعالی سریحاً عمل کرده که به طاقود کفر بوردین خب شیخ سیب از مسلمان ها را پدر و مادرشان تجارتشان و زن و فرزندشان از جهاد در راه الله منع می کنند آیا اینها هم در طاقود حساب می شوند یا خیر؟ ادامایی را که پدر، مادر، قوم، خیشوان، فرزند، از جهاد منی میشه، خود اون آدم لالمونقدر مجرم نیه، هنوز معلوم نیست که او من کرده یا نه. کسایی که این من ارمینه، کسایی که پدر، مادر، قوم، فامیل، کسایی که میاد دست پسر خور میگیره، دست فرزند دخور میگیره، تو از سفج جهاد برا تو جهاد نکن. حالا به خاطر هر دلیلی میگه یا کسی او رو تهدید کرده که پسر خور از جهاد بکش بیرون. یا خاطر که خودش دلی نمو یک پسر رو در جهاد بده در جهاد بمانه گمون میینه که ممکنه مرگ پسرش چهار روز جلوتر بشه از 4 روز دو الله اعلم یا بخاطر دیگه به هر دلیل کسی که می میاد دست پسر خورا از جهاد می گیره که تو بیا از جهاد برو و باستو جهاد دیگه نکن و از دار الاسلام برو به دار الکفر پس بیا به دار الحرب بیا باز مثل ای گپرا بفهمی که دقیقا یک کاری رو میکنه که صد ون ان سبیل الله که مضمون ترین کاره یعنی او از راه الله سر راه الله علیه چشته است و باز انسان‌ها را بند می‌نه از راه الله کسی که میاد در راه الله میاد باز او را بند میکنه یا مثال زورو از مس ازی از بزنیم که یک نفر دم مسجد جماعت ششته باشه دم جماعت تششته است دم مسجد است باز کدام آدمهایی که میاد داخل مسجد که نماز بخونه باز پیش از اونها یا عذر مینه یا به تهدید به زور به هر دلیل اونها را از مسجد و از نماز خوندن منع می‌نه و جای اینکه بچه‌ازو در صف جماعت ایستاده است که من نماز میخوانم، باز دست بچه‌خود از صف جماعت می‌گیره که این نماز به حال و فایده نمی‌ینه این چقدر مذمومه و به همین اندازه هم کسی که فرزند خود از جهاد می‌کشه دوست و عزیز خود را از جهاد میکشه. و همو اندازه مذموم است که یک نفر جلو جماعت ایستاده است و باز میگه که ما اینو به جهاد به جهاد نمی‌گذریم همین اندازه است در حالی که جهاد از نماز هم خیلی اوقات مهمتر شده بر مسلمان ها شیخ الاسلام ابن تیمیه می فرمود الجهاد یقدم علی الصلاه. جهاد گاهگاهی که فرزعین بشه و دشمن و کافر بر سر مسلمان ها حجوم بیاره و مرز مسلمان ها را بشکنه و اشغال بکنه باز در او زمان مرتبه جهاد از نماز هم بلندتر میشه. یعنی در بین ما انسان ها معمول است کسی اگر از جماعت مسجد فرزندخورا بند بکنه که دو دیگه نماز نخونن یا مسلمان ها را بند بکنه که شما نماز نخونید او را ما کافر میگیم یا طاغوت میگیم کار مینه که مخالف نص سریح قرآن کریمه باز این انسان هم که از جهاد وقتی که فرزندخورا میگردانه دوست و عقید عزیز و عقاره بخوره میگردانه از جهاد که شما جهاد نکنیم یا موانع بر اون میسازه که این نتونه بر جهاد بکنه این هم یکی که جلو جماعت استاده باشه و اینها هم در حكم طاغوت هست همون تاريك الله تعالي مفرمايات قل ان كان اباؤكم و وإخوانكم و اخوانكم و عشيرتكم و ازواجكم تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربسوا حتى يأتي الله بأمره يعني اگر این موانع شمارا بن کرد موانع شد از جهاد في سبيل الله و باز خود همین انسان هم مضموم شده نسبت به آیات قرآن کریم و ای به سر از این انسان هم الله متعال عذاب رو میاره و اون انسان هایی که مانع است اونها حکم تاغوت را داره انسانی که از جهاد باز به فرمان همین موانع یعنی به فرمان پدر مادر اقارب اشیعه و به فرمان حب دنیا حب مسکن از جهاد برگشت این انسان هم مذموم است و منحوس است و الله متعال این انسان را تحديد میکنه و زجر میکنه فتره بسو حتی یاتی الله به امره تا اینکه الله متعال عذاب خود را به سر این انسان بیاره جزاك الله خیر شیخ صاحب چون که در رابطه با طاغوت ذکر کردید هیچ کس نباید در مقابل فرمان الله سبحانه و تعالی فرمان کس دیگری را مقدم کند ورا که ولدای نش باشد خب شیخ صاحب یک تعداد علمای هستند که مسلمان ها را به دور خود جمع کردند و بر را بگن که حال وقت جهاد نیست و جنگ را باید از بین برد فقط فضایل نماز و روزه را برای مردم بیان میکنند بالای اینها چی حکم است؟ الله متعال در مورد همون مخاسمه لفظی که بین صحابه شده بود بعضی صحابه زودتر مسلمان شده بود و ایمان آورده و به جهاد فی سبیل الله پرداخته و در صف جهاد قربانی میداده و بعضی صحابه هم بوده که در اون گرمای تابستان در گرمای عربستان حجاج را آب میداده بهترین کار و بهترین خیر و نیکی اینه که انسان‌ها را استشنگ نجات بدن در اون گرما الله متعال در این مورد بر فیصله این صحابه میفرماید اجعلتم سقایت الحاج و المسجد الحرام کمن آمن بالله والیوم الآخر و جاهد فی سبیل الله لا یستوون عند الله اولئک اعظم درجة عند الله و اولئك هم الفائزون اللهم تعال این فیصله رو طوری میکنه کسایی که خانه الله متعال یعنی مسجد الحرام را آباد کردن ساختمان مسجد الحرام را آباد کردند و او کسایی که در گرمای تابستان برای حجاج بیت الحرام آب دادند الله متعال میفرماید اون انسان ها با انسان هایی که به الله متعال ایمان آورده و در راه الله متعال جهاد کرده هرگز برابر نیست <تصفيق> بلکه درجه کسانی که ایمان آورده و جهاد در راه الله مطال کرده خیلی بالاتر از اون درجه کسانی هستند که حجاج را آب دادن و مسجد حرام را تعمیر کردن و الله مطال دوباره صفت دیگر برای انسان ها بیان می کند و اولئی که هم الفائزون و این انسان ها را الله مطال مفلح و پیروز معرفی میکنه لذا هیچ وقت علمایی که به مردم میفرماید که وقت فضائل است وقت جهاد نیست وقت قلم است وقت شمشیر نیست علما کاملا به راه روان هستند که خلاف منهج نبوی صلی الله علیه و سلم است زیرا موقوف و موقعیت خود این علما آنقدر که به اسلام مهم است به اندازه موقع و موقعیت خود نبی صلی الله علیه و سلم نیست این علما ممکن است بعضی علما را ما دیدم که میگه که ما اگر به جهاد بریم باز کسی نیست که سر مردم را به حلال و حرام خلاص بکنه خب دیگه هر از اونان هم نمیپذیرنم و قبول نمیکنم به خاطر اینکه پیغمبر علیه السلام نبی علیه السلام محمد رسول الله صلی الله علیه و شخصیت اول اسلام بود و در همون زمان و در همون وقتی که پیانبر صلی الله علیه و به جهاد ره هیچ کسی دیگه به اندازه پیانبر صلی الله علیه و برای اسلام و باقی موندن اسلام و برای اینکه حلال حرام را به مردم بفهمونه نبود بود. و لذا برای علما هم میگم که موقف شما هرچن مهم باشه برای مدرسه، برای مردم، برای سوادآموزی مسلمان ها، به اندازه موضع پیامبر صلی الله علیه وسلم مهم نیست. به اندازه امر الله متعال مهم نیست که الله متعال بر سر شما امر کرده که این فیروخفاف و بسیقال. سبک بار و سنگین بار، خرد و کلان، عالم و جاهل، همه بلند بشوید و حرکت بکنید در راه الله متعال جهاد بکنید. و این گپی که اونا برای خودشان درست کرده و باید فکر مینه که ما باید جهاد قلمی بکنیم یا مردم را به فضائل تشویق بکنیم به نماز و روزه این اون گپی نیست که الله متعال و رسول صلی الله علیه وسلم از ما مسلمان ها خواسته الله متعال از ما خواسته که هم به فضائل بپردازی و وقتی که باز جهاد فرشد و صدای جهاد بلند شد حتما به سنگر جهاد سهم بگیری و باز اولین نفر باشد در مقابل دشمن اسلام باز بجنگی. و این گپا معمولاً به نظر مهید است که القاعاتی باشه که علما برای خود خواه می کند. خیلی علما هست که در مدارس یا غیر مدارس در مساجد ششته و باز به خاطر این که خود را تسکین بده در همون مدارس و مساجد جاهای که ششته است القاعاتی برای خودشان وهمیات را خود بر خودشان القا می نه که این جاها مقبول نیست فیلن. باید ما و شما جهاد قلمی بکنیم و چند نفر هم دور بر خود جمع میده از اومد جهاد قلم یا از اومد فضائل بزبرزنا میگه که این موضوع مخالف نس سری قرآن کریمه و مخالف سیرت نبیوی صلی الله علیه وسلم و مخالف کل اخادیس پیامبر صلی الله علیه وسلم است خوب و همچنین عرض کنم خدمت شما علمایی که جهاد را کردن و در صف جهاد سهم دارن اونها هم مصروف همین فضایله، کدام فضائلی که این عالم که دور نشسته و باز منتظر فضائل همون عالمی که در جهاد است او هم مصروف همون فضائل است یعنی کل فضائلی را که عالم بیرون از جهاد بیرون از دار هجره بیرون از دار اسلام انجام می‌دهد کل اون فضائل هم در جهاد هست و علاوه ز اونها ولونترین قله اسلام که جهاد است مصروف از او هم هست و او امر الله هم مسلمان ها اجرا مینه و باز برای این علماءی گپ میگم که اگر قرار باشه همه مسلمان ها مسروف فضائل بشه همه مسلمان ها مسروف فضائل بشه و از جهاد شمشیر و از جهاد طفنگ و از جهاد سنگر خوره بکشه دور بکشن به نظر این علماء اسلام به کجا کشیده خواهد شد آیا اسلام باقی خواهد ماند؟ نه هرگز اسلام باقی نمیماند و فقط یک رسم یا یک نام از اسلام ممکنه باقی بماند خب بهتره که این ک از این گفه پراکنده و از این خلاف های خود در مقابل نصوص قرآن کریم و از این تعویلات خود در مقابل آیات و احادیث نبوی صلی الله علیه وسلم جدا پرهیز کنه و به سنگر جهاد و به دار الهجره هجرت بکنه و به مسلمان ها در سنگر نفع برسانه و به خودشان نفع برسانه الله خیر شیخ صاحب یک تیداد هستند که از منادر بر مردم ایر میگن که یک گروه ظهور کرده که فرزندان اسلام را سر میبرند. بر اینا چی گفتنی دارین؟ بر از این علمای ای گپو میگم که آیا شما این تحقیقی کردید واقعا خود شما با چشم سرتون این موضوع را دیدی یا یک آدم مسلمان و متدین که شما او را در سنگر جهاد فرستاده باشی برای شما این گپر را ارسال کرده شما رسوندن یا ای که شما از طریق میدیای کافر از طریق رسانه های کفری، از طریق رسانه های کسانی که بر علیه همین مسلمان ها می یا از طریق از نویدی چیز مسلمی عالمی که این گپر میگه که مسلمان ها سر فرزندان اسلام را می بردن یا رحم ندارن بر مسلمان ها قتل های دست جمعی میکند و این علما را ما دیدیم که از دور و نزدیک از اینجا تا ایران و خاش و زایدان و بندر همنا صدای علما را میشنم این که گوشه و کنار به خاطر این که یک تاغوت را از خود راضی کرده باشه به خاطر این که یک امتیاز نسبی را از کسایی که دوربر خود کسب کرده باشه و به مختزای حال یک گفی زده باشه که اون ماحول از او راضی شده باشه اون محیط از او راضی شده باشه و بتونه در اون محیط یک اشرافیت داشته باشی، یا بتونه یک محبوبیت در بین اون محیط داشته باشه خاطر همین مناسبت های گپارا میگه و ما برای زنا میگم که علماء بزرگواران شما هنوز در سنگر جهاد نرفتی و شما متأثر از تبلیغات خود کفار شدی همون کفاری که بر علیه همین مسلمان میجنگه اگر بیای شما از نزدیک سیل بکنی و باز نظاره بکنی باز میبینی که هیچ فرزندی اینجا زبحه میشه. حتی تفل کافر هم در دار الاسلامی جذب ها نمیشه تفل مسلمان خود سر جا یعنی خون تفل کافر را هم محرم میدانیم رخت نظورا یعنی غیر بالغ کافری که غیر بالغ باشه بالغ باشه کجا باشه به فرزندان اسلام تبلیغات محزیه که اون علماء مینه و باز فقط محیط را از خرازی بکنه فقط به خاطر دراهم محدود الله علم یا به خاطر این که یک کسی را از خود راضی کرده باشه و یک نفس آزاد در اونجا بکشه و اونها کاملا از تبلیغات کفار متأثر شده و در دار الحمدلله همان قانون اجرا میشه اینجا که نبی علیه السلام او را اجرا کرده کدام برخورد که خی اطفال پیانبل علیه السلام کرده همون برخورد اینجا در اسلام هم همون برخورد میشه و باز و به اون علما میگم که شما از دور فیصله نکنی نادیده دیده فیصله نکنی، اول بیای ببینی شما موضوع را ببینی دال الاسلام را ببینید، خلافت را ببینی بعد بعد شما فیصله خود را اعلام کنید، طبق گپ که از کفارش شنیده شما، گپ هایی که از دور شنیده شما، نا تحقیق و نا مشخص فیصله کردن چیز نامناسبیه و بعد دلالت بر ذلت شما مینه و دلالت بر عظیم ناپوهی شما مینه. دلالت برزیم اینه که شما انسانهایی که حق را نمی پیدا بکنی فقط می خود چند روزی در اون محیط که هستی آزاد و راحت نگه داشته باشید و به فکر آخرت و به فکر رضایت الله متعال شما نیستید رضایت الله متعال در اینه که شما تحقیق کرده باشید و باز بعد از تحقیق کدام مشکل را که در خلافت و یا در مسلمان ها باز ببینید باز شما نشر بکنید و اعلان بکنید جزاک الله شیخ سید محترم از ای که وقت گرانبهای تان را وقف ما نمودید با امید ای که برنامه های آینده ما را باز هم رنگین بسازید. خب شنوندههای گرامی امید است که از سخنان شیخ سید تاها برداشت خوب کرده باشید و کوشش کنید که این برنامه ها را از طریق وسایل الکترونیکی به تمام امت پخش و نشر کنید. و در این دعوت سهم شوید وقت برنامه ما به پایان رسید. با شما الله حافظی میکنیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من یک انسان گمراه بودم. تمام لحظاتم را بی‌هدست سپری پری نمودم و دوستان داشتم که آنها هم جاهل بودند. و مرا به مجالس فحشا و منکرات می و متأسفانه می نوشیدیم و می خندیدم و من نینوازی می کردم و دوستان جاهلم مرا تشویق می کردند و پدر و مادرم نیز مرا تشویق می نمودند روز گرفتم که از الله هدایت بطلبم الله تعالی یک پسر نوجوان را برای من فرستاد که متقی بود و مرا به سوی حق دعوت داد و من پذیرفتم و به طرف درسهای قرآن و حدیث حرکت کردم و راه هدایت را پیش گرفتم و از زندگی قبلی خود خیلی پشیمان بودم بعدا برای دوستانم دعوت دادم و آنها دعوت مرا نپذیرفتند. بلاخره دشمنان زیاد پیدا کردم. حتی پدر و مادرم از دعوت به سوی حق مرا می کردند. با خود گفتم می کنم. اما به کجا؟ زمین الله بالایم تنگ شده بود. از الله دعا طلب کردم، یک بار الله رحیم در سرزمین خراسان نظام خلافت را حاکم ساخت و آمدم به سرزمین خلافت با باشیران خلافت اسلامی یک جا شدم و حال در سنگرهای داغ از گرد و غبار آوازهای های سقیله لذت میبرم و از آن بوی جنت را احساس میکنم و حال زندگی خود راضی است. لا نثأراً والله لنثأرنا لنثأرن ولو بعد حين لنثأراً ولنرد الصاع صاعات والمكيال مكايل ذكر المعارك وطريها يسليني. میدان جهاد بازار معامل میان بنده و پربردگارش است جایی است که متعی آن جان و مال از طرفی بنده و بهیشت از طرفی الله است میدان جهاد میدان کارزار کشتن و کشت شدن است میدان بمباردمان و میدان تیرباران است و میدان شهاد طلبی است پس ای بنده ای الله ای کسی که حب جهاد و علای کلمه الله را در دل داری و میخوای با دشمنان الله بجنگی و در دنیا و آخرت سربلند شوی تفکر کن تدبر کن جستجو کن عجله نکن مبادا به گروهی بروی که نقشۀ کافران را عملی می کنند مبادا به گروهی بپیوندی که با حمایت نظامی و مالی کافران و مرتدین می جنگند مبادا به گروهی بروی که شریعت الله را اجرا نمی کنند مبادا به گروهی بروی و در روز قیامت در جواب الله ناتوان بمانی انگامی که از تو سوال شود چرا جنگیدی؟ و بگویی در راه تو پس الله بگویید دروغ گفتی بلکه برای تعصق و برای شهرت جنگیدی پس بر حضر باش و دقیق انتخاب کن بالكف مصحف ورا الشاشي سليني سيف البطول ليا من صلت بي كل المنايا بكى في المر رويني تلقى في تل المعاني اوسبداني بالكف مصحف ورا الشاشي سليني سيف البطول ليا من صلت بي